باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك اني نسنده كتابي تشهتيم جنور نسيني حجر الكرياني شو بدنا علي Comar care de Salim. گرلی عزیز و خوشیز لاتن لبیت خوشحالین لبشتی چلویکی خنواریک تبدیچش تمجوردی هزاری مکریانی حتی نوا خدمتی یا ویبرز و خوشیز فرمون لگال من بن. حجر موكرياني لكتباكي دادانوسي اللوكاتيو كناسنامي سوريايين بو خمدرهنا ناوم بو با عبد الرحمن حسن بلام خلق قامشلي ناونا بوم حاجي حسن آغا مزن بو خويدكارو بار ندگين جميل آغا كاري دشتو باو کاسپی لامل بو چچن آغا شرعي راعتاني دكر حما شريف پیاوی درکو دیوانان بو پیاوی کی زور، خلاوی زگزل، روح سوق، قصه خوش، زور لسرخو پشودریش قطو رنابو هميشه پيداكني بلان بروج ليد بپرسيبا امشو چت خوردو لابيرينامه لكن پياواني دولت لقاميشلي و حسكه زور خوشويستو محترم بو روجيك تلغرافيك حد حما حاجو دو ساعت 8 خود به داتګاي حسكه بناسينه بو حما شريف رويشت سبي ايواره هاتو ها خير بو وچی خیری له خو شتر چوند به د آدرس عربی کې اګل بسری نشاندې وتی آیا وخت کته له حسکه ابتدایی 4 ابتدایي موي زوي 256 له دشتي برشیای عبدالعزیز بدست دست او پیه و بو دله حمشریف شایتمه و برای عرب جګل لمن شایتی ترنیا وتی نابخو و تم وتم سادو راند جناب حاکم بو ما گالتجار براو امو زکن به معنی لمده پرسن شوچمل لده جار جار نایزانم سی و سال لما بر پرچه زوی جمار 256 پنجا و شش حسکه خوا ایزانی دشتی برچی هم لبیر نم آوا تا و ورزیری چه جای ای که بناسم همه شریف دای گو روش یک من و که اویش وک من زگزلال دیواخان نوست بون کابره ای که گوندی سری بجوره کرد و تی خوزی او هردو گایمن بان هر بیت بیتی و, و لاسای سگو مانگشو نوسی بو. که یکم ترجمه لا سبا حدین علی نوسری ترکیو دو هم نمائش نامی یک پردهی دجی امریکاو شاو جلال بیارو سینگمن ری بونوری ساید بو. لشام لچپ خانه قچاقه ترقی چپ نکرد. چوار فرمه یک دبو. دگل زبیحی نوسخه من بو چند کس یک ند. باقی یکیشیم که هزار نوسخه و بو بردو جزیره. حزبی پرتی خبری نرده بو که کو چپخانه که چکواله هر زند کرینو بو موصلی بنیرین لشم هر چونه بو کریمان روش یک من لجزیر بوم ز به حیات که لوله سپکانم دگل باری تیجاری به با ادرس حاجی مرزا بو نردوی بو خبری گیشت ند نده و ای خدا چپخانه و قاچخ حاجی کو فروش چی بسر چی و چوم راست بازار قمشلی دکان حاجیم دیت تایوک بماتیدان نشتم نه زانم بل چی نه بیرم همبالی گیگاره شاد وتی مم حاجی دلن کری باراکی صندوق منبوب بنری حاجی وتی نه ایمنه نه ده زانم کی نردوی نه ده زانم چی تی ده چون کی یکه بده وتم کری که چنده حاجی تیگیشت د سبردو شش لیری ده به حاجی روی کردمن او وتم برا دقق عبدالله کورم تماشا من کرد من وتم معشی نبرد هرینا، او وقت موتوری من اجوتم، بله بله موتوری برقه احمد حسین با احمد حسینم کری واکرایس بردم میخه دین حجم با جیپی کی سرد و هناد در کی بازار چابخانق خلا من برکردو بردم من وتر بسپی لری تیم گیم معشی چاپ و قاچاگه بردی لکادینگ بن کایدا کاغذ لسر کاغذ برام زبنوسه ورن شتک برن جواب ندهد. دوای ای دو یزیدیک هد. نام حزب و نام یزیدخانی یزیدی که دمزانی اندامی پارتیه هد. حیزب دلیه ماشینکه بدن بو. یزیدخانیش خانیش دلیه دو گلوز و چوار بوتری آرقم بو بنیرد. من کنم بو جمیل حاجو بوی نرد. محیدین دبوای بوی بریت سرسنورو تسلیمی که. تکامل کرد هر لعرضی سوریا دایبنی. نچه تا نزیکتر. و تی بو چی؟ و تم چاپکراو کې خوشم دگل چنکته به کې باسی کرد کورد وی راي نرد دوای دو شو رادیو بغداد او چی و او حزبی حزب پارټي له موصل وقتی وخت حکمی زمانی حکم قاسم دګراموه زاهد محمد کا بچکه کورد یک بو بو با عربو افسری سنور بو و چی من دانیشت بم یزيد خان هاته لای مدیر امن قربان چاپخانه کوم له فلانجه و من خبرم بو کسک نرد کلامه بو پارټي نسن بلايا او وانج دگرن یزید خان جاسوسه هر او زاهده ببو اجودانی سلام عارفو دگل او دا سوتا اتر همک تیبی من هم چاپخانش فودا سيري خوش لودايا که امني سوريا بي او بزن ناروخي كتب چيو چن بنوري سعيد دوجمنين کراوه هر له قشقي بوبن بایتی سمر با بیتی زندرا زندرابو مراد نوی که کرد که منشی بخشداری دیرک بوتی نامی نهینی هاتوا دلی گوواری بیتی سی لعراق و هاتوا من ایکم زبیهی که گتمن نوی ایسا عرفات بو ولامی بونردم دیوی نقلی مکان بکا بو شم یعنی شناس نامکی لسر شام بنو سره تا بتوانی بحسانی داوی پاسپورت بکا چو ما دیریک لهمو ادارکانو رمپران مالیات مابو. پرسیم، که معمولی اوکاره؟ پیرمیرده که ملچرچی به نیخ نیخ نیخ نیخ نیشندم و نوزیده ده او راقم لپیشدانه، کابره لپشت اینکی کلکباری که ملایانه و توزی که لیمار بواه چونه زنم، لکو دفتره که برگرشی پرپوتی زور ظلامیه نه تاویی پرپریکرد پر موتی کرد، نگو تی خون باب ایسا هر زمان عثمانی ده چلو پی انجلی را مالیاتی برگداه رویشتن لسره منی شدتم، ما ماست اگر بیست بون مالیاتی هوای حال مجن هبوا، بلام اوم نبیستوا. هیچ وقتی. هی کردم تو من دالی چی بیستوا؟ وتم او عیسی زر فقیره من پولی بودم تکه سنگسوسی در قلب کم. آیان بایان پیکاتی هجده لی رم داره و نوسی خرز دارنی نامم باز به حین او عرفاتی بابت وق صدی پیسوتا و هندگر روا و یکشلوپینز لیر مالیاتی توز لولاتی امپراتوری ببای کردو. عرب شمو لفته بی بر اگر معموره کی ترکان لهر مالا گوندی یک نانی خورد و با دبوبوله کیبدن بنای میوانانه. او سه کهجد لیرا کمدا سی لیرم لگرفندام ابو. لذی ریک حتی ترباسبی سی لیره راست رم کرده گارج کعبه کیدلاق پیمونوسا. سیدای پاررس فرمولاده بخوا چایکم لاله د خویا و هدا به بخویا و هرڅ شي قن جارم کړد کې شامی دوکانو لسړی دیغو تو باله تو مې شنه ازی کردانی د قربان بار شربتا شم او فخرن بن سببه من جوتم باشا بیتاشه چا وتی پیروز به خره کی د 12 سالي وتی بابا چا کوي په د بینه وزوري ټوپې و ای پیوت برو هی حران زاده سید ایوا برز چون هند از دادم هستم پیوتم سید حق چوال لیرا ل هر دو لیرا بو سی لی رقم درنه پیوت لو زیاتر منی ای جوتی باشا خاطر چای تو تو فخری کردستانی ناچر به پیمل رم گرت د بویا هشت ساعت راب پیوم تا دگموا بر سی شم بو نیو ساعت اگر رویشتم خواهر راستان توشی حما شریف حاجو حتمو هینامیا و مجرد حسنه غاوته بزانه امنامه شئه او بو نسرا و ننسرا و لسر پاکت نسرا بو برای برز موسى عرفات دو جوری نامه بومن بو غفور کریمکه لسفر رومانيا سروکمان بو احوالی پرسی بو او کرا کزانی بو زبیحی نو ایسا عرفاتا لایوا بو من کرافق اون دو نو موسى عرفات ب. نتر بس پی آقاکان کتیب خانهی که قشتیلانه این هبو خالکی دیکش هبون کتیب ملیورده گرتن سمعان نوی که کلدانی مدیری پوستخانه گوند جاری و تی ور کتیبت بدن می بو منگی بسته خود دنیات ورز کرد هر کتیبی دیبه هر شوکه دیخوینی او دلی ایدیکم دنی دقالی چوم و با ورک کتیبی که شندم به هیچ همبالک نده بزود و تو. زور باشه نمویست بقال بزازه که ارمانی سعید و کردی تواو ایار بووتی مال من لگونده که برچیه تو رز بو فرمانی ارمانی قرانی سلطان درچو رامان کرد لره شوانکت فنگه که را داشتمی سعید توفلهی خود ما گوردد ناسم دبی هربت کجم ایوش بوی برا دزانم دمناسی و شوانی گوندی خو من بوی چاره چاریک بدو زیو نمکجی اویش وطبوی بله شادو ایمان بینا بسلمان با او جنات کجم سعیدیش وطبوی دی تو پیشم کوا من نزانم شادو ایمان چونه شوانکش وطبوی ها بخواه منیش نایزانم سعید پی وطبو دساوره بم کجا شوانک وطبوی نه نه برو هر او گوتی چند ارمانیک لو تقو راودا چن کردیک هات نسر یکیان با تری گوت من دزانم خون با بسلمان نشاندم هر چی پرسیان من جواب دادمو. ایهو وسط من. اگر هاتو لیکه کی آوايان پرسی اركان اسلام چنده بلا پنج. دم خم له باتيانی جواب دادمو. گين رجرا کن. وتيان پيام بله. ایهو فلان آوا نشريط بيون قربان بسرد بسالمانی نو همو دعبداستوری شرعي زنين. لیکه کی جگل و پرسن اركان اسلام چندن؟ ايوج دله قربان حود. لی راداسين. جمعات دين جوابو پيدلان کاکا وتر ده نه ده زنه پینجه رزگاره کدور ده که و نوا سگ باب نمگود بله پینجه اویش دله ها ها ها اوه به حوتیش راضی نبو پینج هر سرشی ده برایم یکل دوستانی قامشلیم ملا احمد نامی بو کردی چاک و شعری که تب عروانو فرهنجی که کردی عربی نوسی بو که بداخوا چاب نکراو دگل شعری کانی و ابزنم فوتاو چاو سؤالی لعقم نداکرد. خانویی کی شریابو؟ بقچهایی کی تدا؟ بنمیوهایی کی تدا؟ مایجیانی، گلامیاو، ترپیوازی که دیکنده هیلکه چند میریش بو که رایگرت بون. جاری وک زور جاریتر چو ممالی. هر لع درکی و بانجی کرد. هر جاریان با قرباند بموارد جیجنا. دایی کی سامی به هیلکه و شور با شو توشی کشت. امروز دوم میریش کد با سر دب خیره. و توی مریش قریان پیوار بود دمرن وتم دکتری مریش کانلو شارنیه و توی باله حیا بالام چون بتم پیام عیب پلا ماری کلا داو نامی دگل چون الای دکتر و توی تعاونیا عرقی زحلابی علاج اندکه ملا احمد و توی پکو جا چون بسرمی از اینکه و بسم عرق بکرم وتم توی نامه چوم نیو بطل عرقم کری یک با یک مریشکا کان من دگر سرو دو کوچکی چا عرق من دگرو دکردن مریشک سر یک دتاسانو ما دکوتن لپر بزما اما بزم مزد بو بون سر یک بو نبیتوا هرچی حالی زور شر نبو چا بو نوا جار لشام دگل نامی لأوتیل بوین و تا سی سیتخد بو تختک بی میوان ما بیانی که هست این کبرای که زکزلی رنگ تلخی تریاکانو چاو تنجی لسر نوست بو فوت حمامی که سوری وکبر حال بیانا بق داو بو وتم نامی او خال کی بحرینه او نوست من باسی بودا کم دلیل خال کی بحرینو لو امیر نشینانه خلیج کر ماره کن نامی و توی تو باور کد مسلمان چون کاری وعکا خبره وخبره د. و تو براع خالتشی کوچی. وتم بحرین من به سوادم دکری نامه ای کنم با بنوشن. و تو کاغذ و قلم هنر. فرمون نامه بويكي بيرو توی بو ک مروري زورم هنار. با منگيکیش پرسی باشی منگیک دمیانیا و. وتم لاتر سه روز گرتن هر کس شش منگیت اگریم. ایش می‌تی. های های ل سروجو شش من حفظ کچی هتیو مار دکنو خبر نيا په پیکنې نشی ګروا هوتي خونه ل پایتخت بحرین مار ناکن ل توف کلن زګ منامه شیخ هتیو مار کړنی له پیشی دلن شیخ خنث نامي د میگز یک دب چرندبو زق لی دروانی تیگو پکو لوی سراته هوین سال 1957 دنګ داکوت فستیوال نول نو موسکو دا جیرهو کې د چي خصوصاسکه لجنه محلي کومونیستي قمیښلی نونس خلک یاندکل هات نه لای منج کبر وعلت هردوز بوین ثرو دیکن پدروز کړدم هر کس بیوتیا د چم ده بو 600 ليره به د حزب یعنی 1200 تمن چوبون لا عبد الله حاجی مرزا ک تاجر کې د ولمندو اندامې حزب کومونیسم وو و تبویان خوربان، توش من نوسی واده بین موسکو، بده ششصد لیره. ای وش برا من کابراهی کی نزانو است و استنم چونی من هر آواه خانوی بلند و خیابانی جوان ببینم، ششصد لیره دادم، هزار لجاتی من بنیرن، هیس نبیه حواریک بو کردکا. وتبويان نا نخیر هزار کلا شقة، جیبو فرمان حزب شلناک و هریک من بونی تو. ای وش وتبوي آواه، یعنی هر چی جیل میس نبی جاری که تربلا مو بین سختان پیوانیم، هدیه لبر چاوم لاتن جاری آوا اندام یکدقت بگرانی عزیزو خوشویز لیر داحت نکو تایی بشی چلو یکی خوین نوی کتی بی چشت مجوری هجاری مکوریانی تا بشکی تر شادو منو بختوار بن.